داستان مرد پشمالو گوشه از این دنیای پهناور پادشاهی زندگی می‌کرد که صاحب دو مزرعه پربار اونوفه بود اما هر شب دو تا بستگی بزرگ از این های مزرعه آتش زده میشد. پادشاه از این اتفاق خیلی ناراحت بود به خاطر همین تعدادی از سربازاش رو برای دستگیری فردی که این محصولات رو آتش میزنه به مزرعه فرستاده بود اما این کار بی نتیجه بود چون سربازا با وجود مراقبت کامل نتونسته بودن هیچ کسی رو دستگیر کنن پادشاه اعلام کرده بود هر کس بتونه فرد مقصر رو دستگیر بکنه نهصد سکه طلا به عنوان پاداشت دریافت میکنه و در زم دستور داد اگر کسی در انجام مسئولیت مراقبت از مزاره کوتاهی کنه به مرگ محکوم میشه هرچند افراد زیادی مشغول مراقبت و نگهداری از مداره پادشاه بودند اما حادثسه آتیش سوزی همچنان ادامه داشت. و کسی هم دستگیر نشده بود. توی این مدت پادشاه 99 نفر رو به مرگ محکوم کرده بود. تا اینکه یه روزی از همین روزا، یه گافچرون و سال با دو تا سگش پیش پادشاه رفت و به اون گفت، میخواد مسئولیت مراقبت از مزاره رو به عهده بگیره. پادشان قبول کرد. وقتی که هوا تاریک شد، پسرک بالای چهار رومین پشت رفت و از اون بالا کل مزرعه رو میتونست ببینه. نیمه های شب بود که پسرک متوجه شد کسی داره به سمت مزرعه میره و میخواد که بسته های اروفه رو آتیش بزنه. پسرک با خودش گفت باید کمی صبر کنم. بعد هم به سگاش دستور داد که اون فرد رو بگیرن. سگها توی یه چشم به هم زدن تونستن اون شخص رو به دان بندازن. صبح روز بعد اون شخص با دست و پای بسته پیش پادشاه فرستاده شد. پادشاه از این کار پسرک اینقدر قضایت داشت و خوشحال بود که همون لحظه 900 سکه طلا به اون داد. فرد دستگیر شده مثل یه حیوون پشمالو میموند. پادشاه از دیدن این انسان عجیب غریب خیلی حیرت زده شده بود. اون رو توی اتاقی زندونی کرد و بعد هم دعوت هایی به سایر پادشاه و شاهزاده اطراف نوشت و از اونها دعوت کرد که بیان و این موجود تماشایی رو از نزدیک ببینند. همه چیز به خوبی پیش می‌رفت. اما پادشاه پسر ده ساله‌ای داشت که اون هم خیلی دلش میخواست مرد پشمالو رو ببینه یه روز که شاهزاده به دیدن مرد پشمالو رفت مرد پشمالو به اون پسرک خیلی التماس کرد که در اتاق رو باز بذاره و اون رو آزاد کنه شاهزاده کوچیک ما هم دلش به حال مرد پشمالو سوخت و کلید اتاق رو از مادرش دزدید و مرد پشمالو رو آزاد کرد و دوباره کلید رو سر جاش برگردون اینجوری بود که مرد پشمالو تونست فرار کنه. وقتی پادشاه ها و شاهزاده ها از گوشه و کنار دنیا می و بی در انتظار دیدن مرد پشمالو بودند. از موضوع فرار مرد پشمالو باخبر شدند. پادشاه از این اتفاق خیلی عصبانی بود. پیش مهموناش شرمسار و سرفکنده شده بود. با لحل تندی به همسرش گفت اگه مرد پشمالو رو پیدا نکنید و دوباره برش نگردونید شما رو تو کلبه ی حسیلی میندازم و اونجا را آتیش میزنم. ملکه به پادشاه گفت که توی این کار هیچ دخالتی نداشته و اگر هم پسرش کلید رو برداشته و مرد پشمالو رو آزاد کرده اون از این ماجرا کاملا بیخبر بوده. پادشاه شاهزاده رو احضار کرد. ازش سوالای متعددی پرسید. پادشاه بعدش هم به خدمتکاراش دستور داد تا پسرش رو به جنگل ببرند و اون رو بکشن و بعد از کشتنش جگر و ششهای اون رو برای پادشاه بیارن وقتی فرمان پادشاه رسما اعلام شد همه افراد قصر متأثر بودن چون وجود این شاهزاده نعمت بزرگی بود اما کاری از دست هیچکس کس بر نمی اومد آخرش هم خدمتکاری پادشاه شاهزاده را به جنگل بردن فردی که مأمور اجرای این کار بود دلش به حال شاهزاده سوخت و در عوض شاهزاده سگی رو کش و بعد هم جگر و ششهای اون رو برای پادشاه آورد پادشاه با دیدن جگر و ششها خیلی خوشحال بود به هیچ وجه از کشته شدن پسرش غمگین و ناراحت نبود شاهزاده آواره جنگل شده بود. سالیان سال اونجا زندگی کرد. یکی از روزها شاهزاده توی جنگل به یک کلبه رسید که پیرمردی تو اون کلبه زندگی کرد. اونا با هم مشغول صحبت کردن شدند. شاهزادم داستان زندگی و سرنوشت غم انگیزشو برای پیرمرد تعریف کرد. اون وقت بود که اونا هم دیگه رو شناختن. چون اون میر مرد کسی غیر از مرد پشمالو نبود که شاهزاده سالیان سال پیش اون رو آزاد کرده بود از همون زمان مرد پشمالو تو همون جنگل زندگی می‌کرد شاهزاده خوشحال شده بود که تونسته بود یک بار دیگه مرد پشمالو رو ببینه اونا دو سال با هم زندگی کردن اما شاهزاده مایل بود به راه خودش ادامه بده پیره مرد بهش اصرار میکرد که پیشش بمونه، اما شاهزاده قبول نکرد. دوست پشمالو یه سیب تلایی به شاهزاده هدیه کرد. که از داخلش یه اسب با یال تلایی و همینطور یه چوب دستی تلایی خارج میشد که کمک میکرد اون اسب رو برونه. یه سیب نقره هم به شاهزاده هدیه داد که از داخل اون هم آراست ترین سوار نظام ها و، یه چوب دستی نقره‌ای خارج میشد و همینطور یه سیب مسی هم به شاهزاده هدیه داد که از داخل اون هم تعداد زیادی سرباز پیاده نظام و یه چوب دستی مسی خارج میشد پیرمرد از شاهزاده قول گرفت که از هدایای اون نهایت مراقبت رو بکنه و بعد هم با هم خداحافظی کردن شاهزاده جوون بعد از پشت سرگذاشتن یه راه طولانی سرانجام به دروازه های یه شهر بزرگ رسید و تونست تو قصر پادشاه اون شهر برای خودش کاری دستو کنه. از اونجایی که هیچکس کس کاری به کاروی همدیگه نداشت شاهزاده جوان جوون با آرامش خیال تو همون قصر روزگار خودش رو میگسرند یکی از روزا خبر رسید که پادشاه باید راهی میدون جنگ بشه پادشاه از این جنگ خیلی واهمه داشت چون سپاهیان سپاهیانمون خیلی کم بودن و پادشاه باید همین سپاه کوچیک خودش رو فرماندهی میکرد وقتی که پادشاه به اتفاق سپاه خودش از شهر خارج شد شاهزاده به مسئول قصر گفت اجازه بدید که به روسای همجوار برم من به یکی از اهالی این روسا بدهی دارم که بخوام دین خودم رو ادا کنم و خیلی زود هم بر میگردم از اونجایی که کار زیادی برای انجام دادن توی قصر نبود، مسئول قصر مخالفتی نکرد و به اون اجازه داد. وقتی شاهزاده از شهر خارج شد، سیب طلاییش رو بیرون آورد و یه اسب یال تلایی هم از داخل سیبش بیرون پرید. شاهزاده سوار اون شد. بعد هم سیب نقرهیش رو بیرون آورد و بعد هم سیب مسیرو. رو. نایهان، سربازای سوار نظام و پیاده نظام به سپاه کوچیک پادشاه ملحق شدند. وقتی پادشاه نزدیک شدن تعداد زیادی از سربازا رو به سمت خودش میدید، وحشت سراسر وجودش رو گرفته بود. چون فکر می‌کرد شاید اون‌ها سربازای دشمن باشن. اما شاهزاده جلو اومد و زمانی که پیش پادشاه رسید، به نشانه احترام تعظیم کرد و گفت: "علوحضرت، براتون نیروی کمکی آوردم." پادشاه خیلی خوشحال شد. ترس از نیروهای دشمن که تو دلش و تمام وجودش رخنه کرده بود، دوباره از بین رفت. شاهزاده خانم‌های هم که اونجا حضور داشتن، از شاهزاده جوان خواهش کردند که سوار بر کارسکه بشه تا با همدیگه صحبت کنند. اما شاهزاده دعوتشون رو قبول نکرد و ترجیح داد همچنان سوار بر اسب یال‌ترائی خودش باشه. چون نمیدونست کی قرار جنگ شروع بشه زمانی که شاهزاده جوان و شاهزاده خانم‌ها مشغول صحبت کردن با هم بودند یکی از ها دستمال خودش را از وسط به دو قسمت تقسیم کرد و نیمی از اون رو به شاهزاده داد و یکی دیگه از همون شاهزاده خانم‌ها انگشتر خودش رو به شاهزاده هدیه داد ناگهان از دور دشمن ظاهر شد پادشاه در اینکه آیا سپاه پادشاه باید جنگ رو شروع کنند یا نیروهای شاهزاده سوال کرد اما این شاهزاده بود که با سپاهیانش وارد میدان جنگ شدند شجاعانه جنگیدند و توی مدت کوتاهی همه ی نیروهای دشمن رو تارمار کردند فقط چند نفر از اونها باقی مونده بودند که اون چند نفر هم مورد بخشش پادشاه قرار گرفتند تا به عنوان یه پیک خبر این شکست رو برای پادشاه خودشون ببرند. پادشاه و دختراش از این پیروزی خیلی خوشحال شده بودن و زمانی هم که تو راه برگشت بودن از شاهزاده خواهش کردند که به اونها ملحق بشه اما شاهزاده همراهی اونها رو قبول نکرد و از نیروهای پادشاه جدا شد وقتی شاهزاده به نزدیکی های شهر رسید با دقت هرچه تمامتر نیروها و اسب تلاشش رو دوباره به داخل ها برگردون و بعد هم پیاده به طرف شهر براه افتاد. بعد از اینکه به قصر رسید، به خاطر اینکه تأخیر داشت، مرد سرزنش مسئول قصر قرار گرفت. همه چیز تموم شده به نظر می رسید. اما شاهزاده خانم کوچیک قصر به شاهزاده جوون علاقه پیدا کرده بود. اما از اونجایی که شاهزاده جواهری برای هدیه دادن به شاهزاده خانم نداشت، در مقابل سیب مسی و چوب دستی مسی خودش رو به اون هدیه داد. خلاصه. یه روز که دختر بزرگ پادشاه در حال گفتگو با پدرش بود، شاهزاده خانم کوچکتر از راه رسید و گفت پدر به نظر میرسه که کسی تو میدون نبرد کمکمون کرده. اونم کسی نیست جز همین خدمتکار تازه وارد قصر. پادشاه از شنیدن این حرف خیلی خشمگین شد. برای اینکه خیال دخترش رو راحت کرده باشه، دستور داد که اتاق خدمتکار رو بگردند و با پیدا شدن حلقه انگشتر و نیمه دستمال توی اتاق همه ساکنای قصر حیرت کرده بودند زمانی که این وساید رو تحویل پادشاه دادن، پادشاه فورا شاهزاده رو احزار کرد و از اون پرسید این تو بودی که تو میدونه نبرد به ما کمک کردی؟ شاهزاده جواب داد بله علا حضرت، اون فرد من بودم. اون سپاه عظیم رو از کجا ورده بودی؟ اگه مایل باشید، اون سپاه رو دوباره ببینید، آمادم بیرون شهر برم تا همون سپاه رو به شما نشون بدم. و شاهزاده همین کار رو انجام داد. اما قبل از انجام این کار شاهزاده از شاهزاده خانم کوچیک خواست تا سیب مسیر رو به اون برگردونه و زمانی که سربازای زیادی از داخل سیب بیرون اومدن دیگه جایی برای سوزن انداختن نبود. پادشاه برای قدردانی از شاهزاده دخترش رو به اون داد و همچنین اداره امور سرزمینش رو هم به شاهزاده سپرد. و زمانی هم که فهمید خود شاهزاده هم پسر یه پادشاه بوده خیلی خوشحال شد شاهزاده بار دیگه سپاهیاش رو جمع کرد و دوباره به سمت شهر برگشت جشن ازدواج شاهزاده و شاهزاده خانوم با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد این زوج خوشبخت شاید هم هنوز زنده باشند و در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی میکنند